سلام ای کسره حضرت زهرا چوری قبل دلها و ما رم این کعبه مبعوت تماشا همه قطره تو دریا همه پست دور تو بالا همه خارت تو گل هات چوی قبله دل ها شو کریمای قراوی یوم از به هر درد دوایی که تو, تو خداوند سخایی فقیریم فقیریم فقیریم و عشق است فقیریم و عشق است فقیریم که تو حج فقرائیم و عشق از وقیری که تو حج فقران تو جانانی و سلطان تو گوینده قرآن آقا رزا جان همه خو و خس جوی تو هستیم رضا جان نه فقط ما نه فقط ما که جدای کرم توست هزاران چو سلیمان و عجب نیست اگر عجب نیست اگر موسی امران بنی شبه خادم و دربار و عجب نیست اگر ایسی مریمزه دو چشمان تو جان گیرد و او بر تنه هم باده و عجب نیست که جبریل امین خواهد که در کبشگلت را ببرد بهره تبرک به جنار و عجب نیست عشق تو شبهد آتش دوزخ چگل و عجب نیست مهر کشود کف مسلمان عجب این جز که با این جبروتر شده ای زامن آهوی بیان یه بار دیگه میگم عجب نیست اگر موسی امران بمیانه هرم تو بشود خانده ما دربار و عجب نیست اگر ایسی مریمزه دو چشمان تو جان گیرد و اون برتن تن انباد یه حجان و عجب نیست عشق تو شود آتش دوزخچ و گلستان و عجب نیست برد خاک در کفکن اطراف تبرک برید جلال و عجب نیست زمهر تو شود کف مسلمان عجب اینجاست که با این جبرون تج شده ای زامن آهوی بیابان و عجب نیست عجب نیست عجب نیست, عجب نیست. همان آهوی وحشی که تو زامن شدی از لطف کرامت شود زامن مردم به قیامت